بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأمياء وسيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله واسكنه فسيح جنانه والدليل من السنة حديث جبرايل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتسوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأم ربتها وأن ترى الحفاتة العراتة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمغى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم حديث صحيح بخاري هذا كتاب إيمان باب إيمان وإسلام حديث جبريل مشهور لأننا نجنب بينيت كأن مرتبا إيمان وإسلام وإحسان خنديم درشوا مادة تعريف شو مادة إن شئين لك مجيئات عمر ابن الخطاب روزي نشاسيب ودين نزر الصلاة وسلم شخص ما اضطر علينا رجل شديد بياض الفياظ لباسش خیلی سفید بود، شدید و سواد شعر، موهاش خیلی مشکی بود. لا یورا عليه اثر السفر. اثر سفر، آثار سفر روش نبود که مثلا بگیم از بیرون اومده. ولی از ما هم بازم نبود، از اهل مدینه هم نبود. نه از بیرون اومده بود نه از اهل مدینه بود. بود. بود. ولا يعرفه منا احد از ما مامورنا مشتم. تعجب کرده بودن، یعنی با تعجب نشسته بودن. خب این حدیث تا اینجا دلالت بر این میده که جبرئیل به شکل یک بنی آدم در میاد و لباس همین وای وجود که از نوره خداوند این قدرت رو بهش داده که به شکل یک آدمی بیرون بیا حتی جلسه الی نبی و ساف در رکبتیه الی رکبتیه تا اینکه نشاست روبروی رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله زانو به زانو و وقعت فیه علی اینجا اینجاست که تفسیر داره بعضی‌ها گفتن ضمیر برمیگرده به جوی کف دستانش رو روی روی رو ران‌های خودش قرار داد و یک تفسیر دیگه هست که در بعضی از آمده و کف دستانش رو روی ران‌های رسول الله قرار داد یک شخصی که اومده یه خواهشی داره یه چیزی داره که می‌خواد به طلبه دست به دامنشه که مثلا به بهش بگیر این دو تا تفسیر در این کلمه حضرات و اکفه على فتلین خیلی از من تفسیر دومی رو ترجیح میدن که دستش رو گذار شده در باز دروات اومده دستش رو گذار شده رو رو محمد رسول الله صلی الله علیه و و قال یا محمد اخبرنی علی الاسلام ای محمد خطابش هم میگه ای محمد صاحاب دارن تعجب میکنن نمیدونه زانو به زانو نشسته با این شکل و این هیئت سوال میپرسد اسلام بعدن رسول الله جوابش میده اون ارکان پنجگانه اسلام رو میگه ارکان ظاهری از شهادتن نماز خوندن روزه گرفتن زکات دادن و حج رفتن در صورتی که اصلا توانش رو داشته باشه بعدم سوال که میپرسه بعدم میگه صدق راست گفتی پس کجا دونسه صحابه دارن. هی تعجبشون داره اضافه میشه میگه صدق پیش تعجب کردیم سوال می پرسه فرعج بنا له یسال و یصدق سوال می و ما تصریحش قال فاخبرنا بک دکته الصحابه قال فاخبرني عن ایمان به من بگو قال ان تؤمن بالله و شش تا رکن ایمان که داشتیم و توضیحش دادیم شرحش دادیم مفصل در این 7 جلسه ایمان به الله و ملائکه و کتابهاش و پیامبرانش و روز آخرت و قضا و قدر خیرشان رو داشته باشی این شش تا رکن ایمان که ای خدا بنده چندین جا در قرآن زدی ایمان که کفر را در نقد یکی از اینا ثابت میکنه این کسی نقد بکنه و به ملاکه ایمانش از بین میره خداوندم در قرآن بهش اشاره دارن ضد این ایمان ضد ایمان ببین اش اگر یکی از اینها حث بشه بگه کسی ملاکه قبول ندارم بگه کسی ایمان به روز آخرت ندارم کسی که پیامبران خدا را قبول ندارم اینش ضرورتا ایمانش از دست داده کل ایمان و اسلامش از دست داده همونطور خودمان می گوید من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و اليوم الاخری فقد ضل ضلالا بعیده دیگه بالاترین گمراهی داشته اون شخصی که یکی از اینها را بخاط انکار بکنه و بخاط حاشا بکنه بگه اینچونی چیزی وجود نداره یا حقیقتی نداره یا اینکه که بگه مجازه ملائک مجازن واقعیت ندارن حقیقت ندارن خلاف اون نصوصی هست که در قرآن اومده پیانبران پیامبران خداوند بیاد توهین بکنه، اهانت بکنه، بیاد بگه پیامبران نفهمیدن، پیانبران یا عاجز بودن اتفاقا یا پیامبران اجتهاد کردن از خودشون چیزی چیزا بخورده ما دادن بر اساس جامعه خودشون به جامعه امروز نمیخوره اینها همه کفریات و نقض امتؤمنا بالله و ملائکاتی و کتبی و رسوله نقض ایمان به رسوله وقتی گفتیم رسول یعنی صاحب الرسالت صاحب پیام صاحب پیام پیامی از سوی خداوند رسول مبلغه آمده رسالات خدا پیام های خدا را به ما ابلاغ بکنه قال صدق راست گفتی قال فاخبرني عن الاسلام احسان قال ان تعبد الله کاننك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك توزیع شدادی بحث کمال محبت خدا پرصیدن خدا با کمال محبت همراه با کمال ذلت ترس خداوند قال فاخبرني عن الساعه اس قیامت بهندبو كي امات كي برفا ميشه طالما المسؤول عنها بأعلى من السائل انكسك السؤال في كرسه اس كسي ك سؤال ميشه داناتر نيست يعني من ميدون نتا ميدوني كي ميدونه عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو جزء خدا من كسي ديگه نميدونه از جمله ج علم الساعه البقيه امات كي برفا ميش نيست نميدونه قال اخبرني عن اماراتها نشانه هاي قيامه نشانه يعني يعني نشانه ان الان قيامه برفا نه فقد جاء أشراقها اقتربت الساعة وانشق القمر قيامت نازل شده وماه دونسفه شده دونيما شده خب إن دونسفه شده ماهه يعني في قيامت بربا ميجين الان نه إنها أشراق يعني الشريط أش... مياد أز... نشانه مياد نشانه قيامت برز... إن كي قيامت حقه إن كي قيامت حقه دارت خبر أز عينداس أز علم خدا إثبات علم للرد قدريه اثبات علم خداوند نسبت به اینی که رخ میده که ماه دو نصف شده قبل از تورات انجیل هم بوده که ماه نصفه شد خب خداوند از قبل موسی و عیسی گفته بود بعد رخ داد ازمان رسوا شد و الانم کشف کردن که کله ماه هم DNS شده و کی است که ادعای ناسازگاری کردنش کرده مسلمان جز مسلمانان جز صحابه که دیدن و مشاهده کردن و برامون نقل و خداوند هم در این قرآن obut اقتربت الساعه وانشق القمر ما این چیزهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهمون خبر میده عنوان امارات یعنی علامات آمارات یعنی علامة اماره هست یعنی علامتی هست علامت یعنی نشانه هست همون چیز استدعا قرآنی اشارات نشانه هست این نشانه ای که قیامت حق خبر رسولی خداونده. اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم دو تا از اون نشانه ها رو میگن از اون علامت هایی که دلارت برد اینی که دلار قیامت نزدیک و نزدیکتر میشه ان تلج الامه ربتها ان یک زن کسی که سر باشه رو تربیت بکنه یعنی یک دختری رو بزرگ بکنه که اون دخترش بشه بالا سرش حالا هرچه چه تفاسیر زیاده ان تلج الامه ربتها بیش از شش تا قول در این تفسیر ولی که حالا مشهورترینش اینه که مادر هیچ کاری نباشه یعنی یک نوع یعنی بد رفتاری از فرزندان نسبت به والدین مختبره دیگه همکاره فرزندشه. وان و که الان ما میبینیم یعنی حسین الان در جامعه امروز در تربیت عصر حاضر ما میبینیم دختر و پسرش احترامی به والدین خودشون نداره. قدیم‌ها شاید یه کسی مثلا بشینه گوش جلو پدر مادرش اعتراض بکنه شاید بزرگترین جور مجررت می‌دیدن. ولی الان درازم میکشن جلو که در مادرشون. صداشون امروی پدر مادرشون بلند میکنه. این چیزهایی که خداوند در قرآن به شدت برخورد کرده. وخسر لهم جناحه ذل من اضحى بالها تو فرض کن در مقابلش ذلیل باش در مقابلش یک اف هم نگو اینها نهایت ادب را می‌رسونه ولی که روزی خواهد آمد که که این ادب تبدیل به می شود فانتقل حفاه العراق العاله رعاء الشاء تطاولون في البيان ابن کسانی که فا و از اعراب از بادی ها که بیان کسانی که سالار بودند ببینی اینها ها دارن در سازی و بنیانسازی طبقه طبقه رو هم گذاشتن دارن سبقت میگیرن میبینیم در امارات و در کشورهای عربی کسانی که تا سی سال قبل شدربان بودن الان میبینیم که همون اونها دارن سبقت میگیرن از همدیگر در در ساختن ساختمانهایی بلند با و ها و طبقات زیاد قال فما فلا بخن عملیه بعد از که کمی ن بعد رسول الله خطاب به عمر میگه اینجا اهم. اهمیت عمر در اونجا خطاب به عمر میگه یا عمر اتدری من السائل دونیسي این کسی که سوال پرسید کی بود قلت الله و رسوله اعلم فرمودن گفتم که الله و رسولش دناترا قال هذا جبريل این جبرئیل بود اتاتكم يعلمكم امر دينكم و ما که امور دینیت تو نوهت ایجاد بده این مسائلی که مهمه یعنی اینقدر مهم بود این مسائل این مسائلی که الان در سی جلسه خوندیم اینقدر مهم بود که خداوند جبرئیل را فرستاد که یاد بده. صحابه در علمشون نسبت به حال رسول الله صلی علیه و وسلم نسبت به قرآن بالا بود میتونستن راحت توضیح این مسائل اون چیزی که برشون هست لازمه ایمانشون هست لازمه احسان هست با به قرآنی که در قرآن هست بدونن که ماها چون علم بود نسبت به قرآن علممون نسبت به سنت قاصر بود رسول الله رو ندیده بودیم اقوالش رو نشریده بودیم نیازمند این بودیم که بیام تفکیک بکنیم مطالب این حدیث ضعف ما است تو رسول الله صح مشاهده نکرده بودیم در رفتارش، در منشش در حرفش در سخنش نیازمند این بودیم که مطالب رو باز بکنیم بر هر قسمت از اینها دلیلی از آیه از قران دلیلی از سیرت رسول سرم از حدیث رسولت بیاریم و مطالب را کنار هم تیگه بذاریم و بندی بکنیم که بحث این حدیث بالاتر و بیشتر از اینه ما تلاش کردیم در این سی جلسه که خلاصوار رو این مسائل یعنی فقط نکات کلیدی را به مناسبت جام و مقام نکات کلیدی رو فقط بهش اشاره بکنیم و بگیم یقول المؤلف رحمه الله الاسل ثلاث ثلاثت الاصول اصل اول شناخت خدا اصل دوم شناخت اسلام من ربک ما, ما دینوک سوال هایی که انسان در قرسیده میشه آخریش من نبیوک اصل سهو پیامبر کیست ما از رسول الله سوال میشیم که پیامبر کی بوده قال الاصل الثالث معرفه نبیكم محمد صلى الله عليه وسلم رسول خدا محمد صلى الله عليه وسلم باید بدونیم کی بدونیم باید بدونیم و هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية اسماعيل ابن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم أزبني هاشم, أز بني هاشم, بني هاشم أز قريش أزبني هاشم بن هاشم من أزقريش وقريش من العرب الله عليه وسلم حديث في إن الله سفر كنانة من ولد إسماعي واصطفى قريشا من كنانة إن الله استطفى كنانة من ولد إسماعي كنانة يقبئل جدا ميكونا از كي از فرزندان إسماعي وبعد از كنانة قريشا جدا ميكونا واصطفى قريشا من كنانة تا آخره كرسول الله صلى الله عليه وسلم ميقات سپس من رأس بنها شن انتخاب كانت بحث پیامبری و نبوت یک چیز اکتسابی نبود که سوفیا اسلام میترسول می و غار حلا و حلا الدین چیز اکتسابی نبود این انتخاب خدا بود خداوند از بین قبایل عرب یک قبیله رو برتر دونست از اون قبیله برتر بازم عده دیگرو برتر دونست کنانه از کنان قریش از قریش بنی هاشم از کل بنی هاشم خداوند اختیار میکنه استفا میکنه انتخاب میکنه دست خودشه لا یسأل عما یفعل نمیتون بگیم چرا از ایران نبود چرا از عربستان بود هیچ کس نمیتونه خدا را زیر سوال بره خدا هست که انتخاب میکنه انتخاب کرده از بین این همه قبائل عرب رسول الله صلی الله علیه و سلم با عنوان صاحب رسالت صاحب نبوت یهود از الا که ایمان نیوردن این بود که چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم از یهود نیست از بنی اسرائیل نیست چون ابراهیم خلیل الرحمن تو داشت. دو تا فرزند داشت اسحاق بن و اسماعیل که کیعوب بنی اسرائیل که از فرزندان یعقوب یعقوب هم از فرزندان اسحاق یهود توقع داشتن که و ادعا هم دارن که اون ذبیح هست یعنی اون کسی که زبح خاص بکنه ابراهیم ادعا دارن, از دارن که اسماعیل ازباشیت ادعا دارن که اسحاق ولی خب ما اینجا نه ولی که بحث سیرت رو بکنم که ادله ها رو بیارم برای اینکه اون رسول الله صلی الله علیه و مثلا از از فرزندان اسماعیل و اسماعیل ذبیح بوده. این چیزی که الان مناسب متن هست فقط از واو اشاره اینکه ما بدونیم محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم رسول الله صلی الله علیه و از بنی هاشم بوده انتخاب کرده خداوند او را به یک مقامی به یک منزلتی اونم در سن 40 سالگی کلاشه خاین بود. حالا بعضی از شراح میان میگن که عرب دو قسمتا عربه عاربه و مستعربه و عرب اصیل داریم و غیر اصیل مثلا اسماعیل اصیل نبوده. شیخ اصلا این قضیه رد میکنه متمیه در کتاب اقداس ال مستقیم بعضیا میگن که بله که که اسماعیل عرب نبوده بعد که از اینکه اومده از اعراب یمن که وقتی اومده مکه با اونها ازدواج میکنه زبان آنها رو یاد میگیره و بعضی دیگر میگن که خیر ابراهیم خودش عربی بوده و فرزندانش هم عرب بودن اصل لغتشون عرب بوده ما بر فرق نمی کنه مو عربه باشن, عرب باشن اون چیزی که برا مهمی که رسول الله الله عليه و وسلم میفرمایان خداوند از بین بشریت کنارا را انتخاب کرد از بین عرب از کنانه قریش از قریش بنی هاشم و رسول الله صلی الله علیه وسلم از بنی هاشم اون چیزی که در حدیث ها اینها عربند و رسولهم از عرب برگزیده از بین عرب بر او بر ایشان نی تمامی پیامبران خدا اسماعیل و ابراهیم رسول الله صلی الله علیه وسلم آله بر همه اینها صلوات می‌فرستیم سلام علیهم الصلاۃ والسلام قال المؤلف رحمه الله و له من العمر 63 سنه منها 40 و 23 نبیه و رسوله نبیه با اقره و ارسل بالمدتر و بلده مکه و هاجر إلى المدينه و من العمر 63 سنه اینی سال رسول الله صلی اللہ سنوزنگی کاردن ترمی زمین به رسول زنده است مجلس مولود و چی شركات میکنه رسول الله, الله صلی بود شد نور نبود تولد شد از تولید شد و بعد از تولدش در سن 6 سالگی خداوند او را از دنیا برد و فوتش داد از این 6 سال 40 سال قبل از نبوت بوده و ثلاثه و نبی و رسول سال از این 6 سال این 6 سال پیامبر و رسول بود نبی بود و رسول با چی نبی شد با اقرا نبی شد وقتی که رسول اساسا در غار حراء بود جب اینو ما و, و رسفت محکم گرفت گفت اقرار گفت انا ما با این سوره اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک با این سوره و صلاصه به عنوان یک پیامبر به عنوان یک نبی برگزیده شده و با سوره مدسر به عنوان یک رسول که صاحب یک شریعت انتخاب میشه البته که فرگشتن بین نبی و رسول اینکه رسول دو مرحله دست نیاس به دلیل داره یعنی بین راحتی نیست که مثلا ما بخوام بگیم که استاد رسول سلام اول به بریای گوزش شد و به من رسالتون در اصل اصلا ما تعریف خاصی و ترجیح بخوام بدیم که فرق بین نبی و رسول هست خیلی برام سخته هر کسی یه چیزی گفته بعضی‌ها گفتن نبی صاحب شریعت نیست ولی مثلا رسول صاحب شریعت بعضی بعضی‌ها گفتن که نبی کسی دستور تبلیغ نداشته ولی رسول دستور به تبلیغ داشته هر کسی یه چیزی گفته هر که ما می‌دونیم شکی نیست که یه فروخ و تفاوتایی هست ولی جای بحث این مسائل تفسیری و مسائل این مسائل ریز نیست. خب بعد از اینکه سوره اقرا نازل میشه سوره مدثر نازل میشه یا ایها المدثر قم فانذر. اون فرقی که میذارن اینه که نبی مبلغ نبوده. اول رسالتش خودش مهیا شد برای نبوت، اقرا. بعد از اینکه مهیا شد، خداوند هنوز دستور تبلیغ بهش نداده بود. اول خودش رو کرد تا این مرحله نبی بود. بعد از اینکه دستور به تبلیغ داده شد قم فاندر الان انذار بده هوشدار بده از اینجا رسالت شروع میشه رسالت شروع میشه این پیامی که سرعت خدا اوردش شروع میشه که باید بر ابلاغ بکنه یا ایو هم قم فاندر و ورب. ربك و رب کف کبر و ثیاب کف و رج زفهج ولا کمن تستکثر ولی رب کفصب لاین شر شرحش به همین ما یعنی نیاز داریم که هر از گاهی سیرک رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنیم سیرک صحیح رسول الله صلی الله زندگیش از اون توفولتش از بچگیش که از کجا آغاز شد از اون مرحلهی که ملائکه خدا میان قلبش رو باز میکن از رو باز میکنن میشورن دو مرحله شق رو صدف صورت بعد از اون سالاریش و بعد از اون مرحله تجارتش و ازدواجش با خدیجه و بعد از ازدواج خدیجه و بحث کعبه و بازسازی کعبه و حجر رسوت گذاشتن و معروف بودن رسول ها در بین عرب و بین قریش منوان یک امین و صادق و یک شخص با عدب و یک شخص با مکانت و بجاهت که شناخته شده بود اینها مهم مثالهای اون که قبل از برسات بعد از برسات خلوت کردن رسول ها سلام جسن توی غار، بحث اقرار، بحث سلام کردن ها بر رسول ها سلام قبل از نبوبت سلام می فرستدن تا اینکه بعد از نبوبت تحسه وحی نازل میشه میان نزد خدیجه خدیجه او را بعد میرن پیش ورقه ورقه ابن نوفه بیاد این همون ناموس و وحی هست که بر موسی نازل شده این وحی خدا هست اگر من زنده باشم تو را نصرت میدم بعد برقه امنه میکنه وفات میکنه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم دستور تبلیغ دین خدا بهش میده اینو را تبلیغ بکنه آزار و عذیت میشه از اون کتر خوردن یک طرف از اون فوش و بدویراق از اون تهمت این که دیوانه هست، صاحر هست و دیگر تهمت هایی که بهش زدن، اینکه کسی دیگه بهش یاد میده، غیر از شکنجه اصحابش، تو یکی از اصحابش شکرت کردن از مکه رفتن، مراحل کمی نبود خصوصا اون 13 سال اولی که در مکه بودن رسول الله صلی الله علیه و آله به عنوان یک داعیه در 13 سال کلی رسول الله صلی الله علیه و به شکنجه دیدن و تمام تلاششون رو کردن برای, برای تحصیح اعتقاد این مسیبت هایی که بر رسولت و اصحابشون اومد و کسی نیومده سه چهار سال از دعوت نمیگذره تا اینکه صحابه صحاب بلند میشن هجبت میکنن از شکنجه فرار میکنن میرن به اینقدر مشرکین تحمل نداشتن یکی بیاد ساز مخالفشون بزنه. یکی با مخالفت بکنه، تحملشون نداشتن اصحاب رو روندن از اونجا بیرونشون کردن تا اینکه هجرت دوم باز دوباره رخ میده رسول الله صلی الله علیه و سلم در این همه غم و اندوه تا اف بازم از اونجا بیرون بیرونش میکنن و میروننش تا جایی که میاد فرشته ای اجازه میگره یا رسول الله به من اجازه بده کوه مکر را به هم بزنم رو نبود بکنم تمام بشه بره رسول الله میگه نه رحم رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نه شاید از نسل اینها کسانی اهل ایمان و اهل اسلام بشن. بیرون بیا و عمدت ان مستكره کریمه فرزند رحم و رؤفیتی با این همه آزار و اذیت راضی به تنجی اونها نبود خیلی دست و تحمل کردن سر به سرش می گذاشتند دنبه یا شکنبه پیونو از شتور گرفته و بوز گرفته میذاشتن بر سرش میزدند سنگ پرد میکردند بر رسول هیچ وقت انتقام نمیگرفت هیچ وقت کینه نمی برزی. تمام تلاششو کرد برای هدایت اونها تکون کلمه الله الهی العلی بخاطر کلمی توحید خودش آراسته کرده بود هیچ نقطه ضعفی از خودش نمیگذاشت و خداوند من به خاطر اینکه کمال اخلاقش را برسونه وقتی که با مجادله میکرد با مشرکین قریش وقتی که ابن ممتوم میاد نزدش عبس و تقلل عن جاهل با وجود اون نابینا ندید که چهره رسول الله ندید ولی به خاطر اینکه کمال اخلاق رسول الله ثابت بکنه گناهی نوشته بشه اینجا برای الله خسن عبسه، عبوسه، چهره خودش ندید که گناهی نوشته بشه بلی که خداوند از این فسر شعر دیگر میخواهد مقام دیگر منظور دیگر عبسه تبله ان جاءه و تبله انجاه هل اعمار اون وقتی که نابینا اومد از یک طرفی ملامت برسول سلام که باید اهمیت بریمون امنین اونهایی که تو را میخوان نه اونهایی که از تو بدش را داده تو باید اهمیت بدی به اونهایی که میخوان خواهانش هستن هرچند که شاید نبینن هرچند که شاید نداشته باشن هرچند که شاید به جاهت و منکانت و مال و منان نباشن وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اذیت میشه و تهمت میزنن که تو فقط مشت فقیر و ارازل و اوباش داره براتن خداوند آیاتی نازل میکنه در از نوح به عنوان یک تسلیت روحی به عنوان یک دلداری آیاتی رو نازل میکنه اون چیزی که به نوش گفتن ما نرا که تبعت الا الذين هم و نابدي اون کتابت میبینیم اراضلن مش اراضل عباش از که هیچی هیچ ندارن این در جامعه بادی را یعنی هر چیزی بهشون گفتیم نمیپذیرن خورش نمیخواستن که اون چیزی که رسول الله میگه بگن چش در مقابلش همونطوری که به احد گفتن دلداری های خداوند در رسول الله صلی الله علیه زیاده اون از اون آیاتی که نازل میکنه دلداریش بده صبرش بده تحملش بده در مقابل مشققت های دعوت گفتم هستن برای ما هست که رسول الله صلی با این مكانتش و وجهش و جایگاهی که داشت قبل از بعثت و بعد از بعثت سعی کردن خوردش بکنن ولی که رسول اخلاقش رو اون آدابش رو حفظ کرد به همین الگوی ماست خدا میگه لقد کان لکم فی رسول اسوه حسنه برای شما الگویی هست اون داعیه نیست اون کسی که بد اخلاقه اون کسی که تنخور هست اون کسی که فرش بیده اون کسی که نام بذیب و زشت به زبانش میاره این داعیه نیست این الگو نیست این از رسولات اصلا الگو نگرفته همونطور که رسولات سلام الگو برای ما هست و دینمون ازش میگیریم در عبادت و طاعتمون در اخلاقمونم مثل رسولات سلام باید باشیم کمال ادب با مردم کمال احترام کمال اکرام اکرام از وقت خودمون گذاشتن برای باهاشون بودن سر زدن بهشون در عیادتشون در جنازهشون در خوشی و ناخوشیشون شریکشون بودن اینها اخلاقیات رسول الله صلی اللہ به گفتم بحث عباسه رو کردم از این که اینجا با وجود که نابینا نبود یک اخم را خدا از پیانبر نپذیرفت یک عبوسیت صورت را نپذیرفت که نابینا بود بحث خوشرفتاری با دیگرانه بحث خود خوب برخورد کردن با دیگرانه بحث این که دین رو با جذابیت به دیگران برسونیم نه با تندی و خشونت اصلا دین نرمیه بله انسان جاهایی لازم از خشونت به کار ببره خصوصا با عاصی با, با یک شخصی که منحرفه یک شخصی که صد به دین میکنه همونطور که آیات نازل میشه در شعن کسانی که مثلا از جنگ و وقتی رسولان برمیگشتن شروع کردن کردن مسلمان ه تا کو لا تعتذر عزدا قد کفرت بعد ایمان قفر شدید بعد از ایمانتون. شخص چخت باش برگرد قول اب الله و آیات و رسولی کنتم تستزهون خدا پیغمبرش و نشانه های خدا آیات خدا قنیمت و جهادی که از اونها بود دارید مسخره میکنید ریشخند میکنید جاهای رسما با شدت برخورد میکردن جایی که نیاز بود ولی جاهای دیگر اصل برنامه‌ای بود به خاطر همین اساسا میفهم ما کان الینو شیئن الا زانه یعنی در چیزی نمیاد مگر اینکه زیباش بکنه, وما شدت بکنه. و ما في شيء الا شانه شدت یک چیز رو زش میکنه ان جلسه بعد میدیم صلی الله علی محمد و محمد